ببخشید آقا، این ساعت چند است؟ کدام ساعت؟ این ساعت طلایی قیمت این ساعت چهل هزار تومن است اوه، گران است البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا قیمتش چند است؟ بیست هزار نه متشکرم محمد این تابلو قشنگ است بله خیلی زیباست خیلی طبیعی است این منظره بهاری در ایران است محمد تا چیزی نمیخری؟ الان نه در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم